بنامه خدای یگانی یگانی مهربان سلام تا به حال به این موضوع فکر کردیم که چه چیز در افثانه ها وجود داره که ما رو به سویون جذب می کنه و از بزرگ و کوچیک برای شنیدن و خوندنش مشتاقیم؟ سادگی، روان بودن و هدایت ما به دنیای درون از دلایل مهم جذابیت افسانه است. ای رو از سرزمین اسکاتلند براتون نقل میکنم به نام افسانه سرزمین خوکهای آبی برگرفته از کتاب های مردم اسکاتلند به قلم دونالد ای مکنزی با ترجمه ای از سارا شمس. پریان دریایی با اون پوست خاکستریشون خیلی شبیه خوک‌های دریایین. اونا داخل غارهایی در مرز سرزمین زیر امواج زندگی می‌کنن و برای خودشون پادشاهی مستقل دارن. پریان دریایی از مرواریدهای دورو گردنبندی به گردن دارن و آشق شکار ماهی آزاد نقره‌ای بین خزه‌های اعماق اقیانوسن و در در تنگ دورده است که جریان آبهای شیرین کوهستان در اونها جاریه به شکار مشغوله. پریان دریایی به زبون خاص خودشون صحبت میکنن. اما میتونن به زبون آدمیان هم حرف بزنن. اونها و خوک دریایی میتونن به ساحل بیان و خودشون رو به شکل انسانهای زن و مرد در بیارن و موجهای دریا رو به اسبانی خاکستری با یال و دم بلند و سیاه تبدیل کنن و روی دشتها و کوه‌ها بتازن در همون روزگار مرد ماهیگیری بود که تونست قصر ملکه پریان دریایی رو ببینه و تمام اون چلو که دیده و شنیده بود بازگو کنه مرد ماهی افسان ما در شهرستان کوچکی نزدیک خونه جان او گرانت زندگی می کرد و کارش شکار خوک دریایی و سید ماهی بود. اون با فروش پوست خوکها که لباس های مناسبی در سرمای زمستون بودن و گرفتن ماهی های آزاد و روغن ماهی پول خوبی بدست میآورد و به عنوان شکارچی خوک های، دریایی اسم و رسمی پیدا کرده بود مرد ماهیگیر در میون تخت سنگها به جستجوی خوکهای دریایی میپرداخت و اونا رو که در گرمای خورشید به خواب امیقی فرو رفته بودند صید میکرد توی خونهٔ مرد ماهیگیر بستههای بزرگی از پوستهای خشک شدهٔ خوکهای دریایی وجود داشت و مردم از دور و نزدیک برای خرید پوستها نزد اون میومدند در یکی از روزها سوار سیاه غریبه به خونه مرد ماهیگیر اومد. اون از سریع سری و سیاه با یالهای خاکستری داشت. سوار غریبه در زد و از ماهیگیر خواست که چند لحظه ای از خونش بیرون بیاد. وقتی ماهیگیر از خونش بیرون اومد، غریبه گفت. آقا، لطفا عجله کنین و همراه من به سمت مشرق بیاین. ماهیگیر با تعجب از غریب پرسید همراه شما بیام برای چی؟ غریب جواب داد ارباب من با شما کار واجبی داره و میخواد شما رو ملاقات کنه عجله کنین آقا خواهش میکنم عجله کنین ماهیگیر مکسی کرد و گفت ولی ولی من اسبی ندارم و نمیتونم همراه شما بیام غریب گفت شما الان باید حرکت کنید سوار اسب من بشین اون قوی و تیزپاست ماهیگیر قبول کرد و سوار اسب شد اسب با سرعت و چهار نل به سمت مشرق حرکت کرد و پشت سرش گرد و خاکی بر جای گذاشت ماهیگیر با خودش گفت آه خدای من واقعا اسب قوی و تیزپای من که در تمام عمرم سوار اسبی به این تندرویی نشدم اسب همچنان میتاخت تا اینکه لب پرتگاهی ایستاد مرد غریبه گفت داریم به محل زندگی ارباب نزدیک میشیم ماهیگیر با تعجب به اطراف خودش نگاه کرد هیچ خونه ای در اون نزدیکی دیده نمیشد ماهیگیر با تردید پرسید خونه که ارباب به شما این نزدیکی است قریبه جواب داد: بله بله همین نزدیکی ها و یه دفعه با بازوان خودش ماهیگیر رو در آغوش گرفت و با فریاد همراه اون از لبه پرتگاه به داخل اقیانوس برید. اسب هم همراهشون رفت. غریبه و مرد ماهیگیر توی هوا به سمت اقیانوس پایین می‌آمدند از کنار مرخ های دریایی که در هوا پرواز می کردن و داخل آب شیرجه می‌رفتند عبور کردند و همراه اسب با صدای بلند داخل دریا افتادند و توی آب ور شدند تا اینکه نور اطرافشون کمرنگ و ناپدید شد و وارد تاریکی شدن ماهیگیر از اینکه زنده بود سخت در حیرت بود اون در اماغ دریا بود نه چیزی می دید و نه چیزی می شنید. ولی هنوز می تونست به آرومی حرکت کنه بالاخره دست از شنا کردن کشید و جلو رفت هیچ دردی در بدنش احساس نمی و نمی ترسید اما همچنان هاجواج بود با خودش گفت معلوم نیست؟ تو این تاریکی، تو این سرما چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ بالاخره نور سبز ضعیفی رو دید و وقتی به سمت نور حرکت کرد، نور روشن و روشنتر شد تا اینکه در ها و قله ها و جنگل های سرزمین دریایی در مقابل چشاش نمایان شد و اون متوجه شد در کنار مرد غریبه شنا کرده. و حالا هر دو تبدیل به دو خوک دریایی شده بودن قریبه گفت اونجا اونجا خونه ارباب منه ماهیگیر نگاهی کرد و در لبه جنگل دریایی شهر کوچکی رو دید با خونه های سفید که پوشیده از خزه های سبز دریایی بودن خوب که دقت کرد دید انبوهی از خوک دریایی در حال حرکت به این طرف و اون طرف بودن ماهیگیر صدای اونا رو میشنید ولی حرفاشون رو نمیفهمید از جنگل دریایی صدای موسیقی دلنشینی به گوش میرسید غریبه گفت اینجا خونه ارباب منه اجازه بده وارد بشیم بعد اونو به سمت قصر زیبایی که پنجره های شفاف و بسیار روشنی داشت بود مرد ماهیگیر و قریبه وارد اتاق شدند. در گوشه ای از اتاق یه خوک دریایی خاکستری پیر روی رخت خواب خوابیده بود و از درد ناله میکرد. کنار تخت اون چاقوی خونالوت قرار داشت. ماهیگیر با یک نگاه فهمید که اون چاقو متعلق به خودشه و به خاطر آورد که چند ساعت قبل اون یه خوک دریایی رو با چاقوی خودش زخمی کرده بود اما خوک دریایی در حالی که چاقو رو همچنان در پشت خودش داشت تونست فرار کنه و خودش رو به دریا برسونه ماهیگیر پی برد که خوک دریایی پیر همون خوکیه که اون قصد شکارش رو داشته و حالا قلبش از ترس به شدت میتبید در یک لحظه خودش رو روی پاهای خوک دریایی پیر انداخت و گفت ای خوک پیر خواهش میکنم کنم منو ببخشید میدونم گناه ولی ولی ولی می کنم از سر تقصیر و گناه من بگذرید خواهش میکنم مرد ماهیگیر می ترسید که خوک دریایی از اون انتقام بگیره بنابراین مرتب از خوک دریایی پیر تقاضای بخشش میکرد راهنمای ماهیگیر که در گوشه آروم ایستاده بود جلو رفت و چاغوغ خونالود رو برداشت و به ماهیگیر گفت این چاغو رو میشناسی؟ ماهیگیر با ترس جواب داد بله بله متأسفانه این چاغو متعلق به منه. راهنما گفت این پیرمرد پدر منه. هیچ حکیمی قادر به معالجه اون نیست اونا بدون کمک تو نمیتونن کاری بکنن برای همین هم به در خونه تو اومدم و از تو خواستم همراه من به اینجا بیای. البته به خاطر فریب دادن دست و معذرت میخوام ولی چاره ای نداشتم من پدرم رو خیلی دوست دارم و برای نجات جون اون حاضرم هر کاری انجام بدم و گفت اوه نیازی به عذرخواهی نیست من از شما مذرت میخوام باور کنین باور کنین از اینکه پدرتون رو زخمی کردم خیلی متاسفم امیدوارم هر زودتر حالش خوب بشه و بعد اضافه کرد خب حالا من باید چیکار کنم راهنما گفت لطفا دستت رو روی زخم پدرم بذار و براش آرزوی شفا کن. ماهیگیر دست های خودش رو روی زخم خوک دریایی پیر گذاشته. و دردی که خوک دریایی پیر از اون زجر میکشید وارد دست های ماهیگیر شد. اما خیلی باقی نموند و زخم مثل یک حرکت جادویی خوب شد. و التیام پیدا کرد و خوک زخمی یه دفعه قوی و سالم مثل قبل از جا بلند شد. حالا تمام خوک دریایی از بهبودی خوک دریایی پیر خوشحال شده بودند و پایکوبی میکردند بعد از خوب شدن حال خوک دریایی پیر، مرد ماهیگیر افسانی ای ما نمیدونست بعد از این چه اتفاقی میافته. چون برای مدتی احساس کرد خوک های دریایی حضور اونو فراموش کردند، تا اینکه راهنما گفت: ای مرد ماهیگیر، حالا دیگه میتونی به خونت برگردی. زن و بچه ها در انتظار تو هن من تو رو از میونه ماغ دریا راهنمایی میکنم. و اصل من تو را از دشت و کوه که گذر کردیم عبور میده مرد ماهیگیر گفت شماها خوکای دریایی مهربونی هستین من از شما سپاس گذارم. خوک دریایی راهنما گفت قبل از این که از اینجا بری قول بده قول بده که بعد از این هیچ وقت خوک دریایی شکار نکنی آیا این قول رو میدی مرد ماهیگیر لحظهای سکوت کرد راهنما که سکوت ماهیگیر رو دید گفت در این باره تردید داری ماهیگیر بهتندی جواب داد نه نه نه نه مطمئن باشید که دیگه حتی فکر شکار خوک دریایی رو هم نمیکنم قول میدم قول میدم راهنما گفت اگه قول خودت رو بشکنی بدون شک کشته خواهی شد من به تو نصیحت میکنم که هیچ وقت زیر قولت نزنی اگه به عهد و قرارت پایبند باشی پاداش خوبی دریافت میکنی و ما هم به تو کمک خواهیم کرد ماهیگیر قول داد که هرگز قولش رو فراموش نکنه و راهنما اونا به خشکی برگردند به محض اینکه ماهیگیر و راهنما پا روی ساحل گذاشتن ماهیگیر دوباره به شکل انسانی خودش در اومد و راهنما هم تغییر شکل داد و روی موج بزرگی فوت کرد و اون موج تبدیل به اسبی سیاه با دم و یال خاکسری شد راهنما به ماهیگیر گفت بهتر است زودتر پشت اسب سواشی ماهیگیر بر اسب سوار شد و اسب مثل باد به حرکت در اومد و رفت و رفت و رفت, و رفت تا اینکه شب شد و ستاره ها توی پیدا پیداشون شد. و اونا به خونه ماهیگی رسیدن. راهنما گفت: هر موقع با قایق خودت به دریا اومدی چنگ خودت رو بیار و آهنگ های شاد و دلنشینی بنوواسه. چون ما خوکهایی دریایی از موسیقی لذت میبریم. به بعد. کیسهای به مرد ماهیگیر داد و گفت اینو از من به هدیه بپذیر امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی ماهیگیر کیسه رو گرفت و به راهنما گفت آه خدای من شما خیلی مهربون و خوبید مواظب پدرتون باشین خدا نگهدار راهنما گفت خدا نگهدار دوست عزیز اما لت رو فراموش نکن و بعد هم سوار بر اسب با سرعت از اونجا دوش ماهیگیر وارد خونش شد همسرش با دیدن اون گفت چقدر دیر برگشتی؟ کار و کاسبی چطور بود؟ تونستی چیزی سید کنی؟ مرد جوابی نداد هنوز در فکر خوکهای دریایی مهربون بود بعد آروم گوشه نشست و کیسهی رو که راهنما به اون هدیه داده بود باز کرد و با کمال تعجب دید که کیسهی کوچیک پر از مرواریده همسرش با تعجب و خوشحالی فریاد زد این این مرواریدن از کجا آوردی خدای من چقدر قشنگن ماهیگیر تمام ماجرا رو برای همسرش بازگو کرد و در پایان تاکید کرد که نه من دیگه هیچ وقت خوک دریایی شکار نمیکنم هیچ وقت هیچ وقت بله ماهیگیر افثانه ما به قول خودش عمل کرد و دیگه هیچ وقت خوک دریایی شکار نکرد و سالهای سال در کنار خانوادش به خوبی خوشی زندگی کرد اون چه که براتون نقل کردم افسانی ای از مردمان سرزمین اسکاتلند بود به نام افسانه سرزمین خوکهای دریایی گرفته از کتاب افسانه های مردم اسکاتلند به قلم دونالد ای مکنزی با ترجمه از سارو شمس در افسانه ها جنبه های ارزشمند سنتی و پستمینه های فرهنگی و روانشناسی اقوام و ملل مختلف دیده میشه. افسانه‌ها، ها حوادث و سوانه اجتماعی رو ارائه می و مشخصات خاص سنتی و فرهنگی هر قوم و ملت رو منعکس می کنن. هزار افزان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح ویراستار سهیلا کریمی اجراب مهران دوستی صداوردار حدیه کار کهی کننده زهرا عبدالله زاده سان دیگر بدروت